خلیفه که می دید اختلاف بر سر این است که کدام یک اول فوت کرده است و هنوز نمی تواند روشن کرد کدام یک شرط را برده اند با خود اندیشید و عاقبت بالای سر هر دو مرده با صدای بلند گفت به خدای یک دو سوگند یاد می کنم که هرکس بتواند به من بگوید کدام یک از این دو اول فوت کرده است یک هزار که یه به او جایزه خواهم داد هنوز این سخن خلیفه به پایان نرسیده بود که از زیر ملافه ابوالحسن صدایی شنیده شد که می یا امیرالمؤمنین اول من مردم بعدا ناست و زمان زود طلا را به من دهید. در همین لحظه هم خلیفه دید ابوالحسن ملافه را از روی خود به کناری زد و از جا برخاست و در حضور او زمین را بوسید و زابیده از حرکت ناگهانی مرده تسید و بی اختیار جیغ کشید. ولی به زودی خون خود را یافت و از زنده بودن نوزهد که او هم به پا خواسته بود بسیار خوشنود شد و شکل خدا را به جای آورد و گفت ای نوزهد برجنس نزدیک بود از قصه مرگ تو بمیرم شوخی خطرناکی با من کردی ولی عیب ندارد تو را میبخشم و خوشحالم که سالم و زنده هستی خلیفه وقتی صدای ابوالحسن را شنید زیاد تعجب نکرد اما نزدیک بود از شدت خنده قالب تهی کند و در حالی که خنده به او مجال صحبت نمیداد گفت: ابوالحسن این بار دوم است که تو مرا آنقدر شدید می‌خندانی که خنده سبب مرگ من خواهد شد. چه که چنین فکر کردی؟ نمی توانستم بفهمم که تو با من و زبیده چنین مزحی خواهی کرد. ابوالحسن پاسخ داد: یا امیرالمؤمنین، همه چیز داد دقیقا و بدون یک کلمه پس و پیش برایتان تعریف خواهم کرد. خلیفه میدانند که من در زندگی آسایش و لذت را دوست میدارم و میخواهم از خوردن بهترین ها و نوشیدن بهترین و نایابترین شرابها لذت ببرم و هر شب بسات بذم و عش را برپا دارم و همسر من هم نه تنها مانع من در این زمینه نگردید بلکه او هم بیشتر مرا در این راه تشویق کرد و آنچه که سلطان و ملکه به من و همسرم مرحمت کرده بودند صرف مهمانی و بذم کردیم. و در نتیجه همه موجودی خود را خرچ خوشگذرانی کردیم و از مراجعه به شما و یا ملک زویده هم شرم داشتیم و نخواستم از ای که داشتم استفاده کنم و از خزانه پول بگیرم این بود که با مشورت همسرم به این فیف افتادیم هم با شما میزاهی کرده باشیم و هم به نان و نوایی برسیم این فکر مردن به ذهن ما رسید و ضمنا از ذوق خلیفه هم آگاهی داشتم که از اینگونه تفریحات لذت فراوان میبرند همانگونی که با خود من آن شوخ طبعی را به بردید و بسیار تفریح کردید امیدوارم که با بخشودن ما خود را هم خوشنود سازید خلیفه و زبیده از صداقت حسن بسیار خورسند شدند و از نقشه اتکاری او که هرگز به فکر آنها خطور نمی کرد لذت فراوان بردند و خلیفه که هنوز می خندید از جای برخواست و به ابوالحسن و نصحت گفت هر دو دنبال من بیایید تا هزار سکه طلایی را که وعده کردم به شما بدهم. زبیده هم هزار سکه طلا به نُحت و زمان هدیه کرد. بدین ترتیب ابوالحسن و همسرش بیش از پیش محبت و علاقه خلیفه و ملک زبیده را به سوی خود جلب کردند. خلیفه و زبیده مراتباً با بخشش‌ها و گشاد دستی های خود زندگی بسیار آسوده و سعادتمندی را برای آن دو فراهم آوردند. علایدین و چراغ جادو در زمان قدیم در مرکز یکی از بزرگترین استانهای کشور چین خیاطی زندگی میکرد که نامش مصطفی بود و زندگی خود را از راه خیاطی میگذراند درآمدش فقط کافی برای یک زندگی بخوران امیر بود او فقط یک پسر داشت و نامش علایدین بود که تربیت کافی نشده بود و فرزندی ولگرد و و نافرمان بود و از صبح زود در کوچه و خیابان با بچه همسال خود پرسه میزد و تمام روز را به خیابانگردی می گذراند. وقتی علایالدین به سن شاگردی رسید پدرش او را در دکان خود به کار خیاطی واداشت. اما او به هیچ وجه علاقه من به كار کردن و یا آموختن رشته از سند و هنر نبود. و اگر پدر اندکی از او قافل میشد از دکان می و با جوانان همسن خود به ولگردی می پرداخت. پدر بسیار کوشش کرد تا علایدین را به کار و کسب علاقه من سازد و استجاد او را به کار گیرد. اما تلاش پدر سودی نداشت و علایدین اصلاح پذیل نبود و با وجودی که او را تنبیه هم می کرد در این پسر نداشت. سرانجام شاگردی در دکان پدر را رها کرد و عاقبت پدر از قصه بیمار و بعد از چند ماه درگذشت. مادر که پی برده بود پسرش کار پدر را دنبال نخواهد کرد، بساط خیاطی و دکان را فروخت و با پولی که از این راه به دست آورده بود، دوک نخریسی تهیه کرد و در خانه خود به ریسیدن نخ مشغول شد و با درآمد مختصر خود زندگی را اداره می کرد بعد از مرگ پدر، علاید این که دیگر کمترین مانعی در سر راه خود نمیدید و از بادرش هم هیچ گونه تأثیری نداشت، به هیچ وجه دست نان آوردن برای خانواده نبود. و با بچه ولگرد به خیابانگردی میپرداخت علایدین پانزده ساله شده بود و و کاری جز پرسه زدن در کوچه ها نداشت روزی رخگذری چشمانش به علایدین افتاد و مدتی او را زیر نظر گرفت این رخگذره غریبه جادوگر معروف افریقا بود که برای منظور خاصی به چین آمده بود این جادوگر که به علم بیاف شناسی هم آشنایی کامل داشت با دقتی که روی علایدین کرده بود، مطمئن شده بود که این پسر برای اجرای منظور او بهترین فرد به شما میرفت و لازم بود به هر شکلی شده خود را با او نزدیک سازد. اینجا جادوگر بعد از تحقیق و بررسی نام پدر علایدین را یاد گرفت و در یکی از این روزها که علایدین مشغول بازی در کتب بود او را صدا زد و به او گفت تو پسر مصطفی خیاط نیستی؟ علایدین پاسخ داد چرا؟ اما مدت هاست که او فوت کرده است جادوگر با شنیدن این خبر علایدین را در آغوش گرفت و شروع کرد به بوسیدن او و آه کشیدن و گریه کردن علایدین پرسید چرا گریه می کنی؟ جادوگر پاسخ داد چگونه می مرگ برادرم را تحمل کنم؟ من عموی تو هستم پدر تو برادر عزیز من بود من سالها بود که خارج از مملکت بودم اینک با یک دنیا امید برای دیدار برادرم به وطن بازگشتم و حالا میگویی او مرده است با این خبر دیگر رنگ شادی را نخواهم دید هنوز بیافه او را در نظر دارم تو خیلی شبیه پدرت هستی مادرت کجاست؟ سپس مقداری پول در دست علایدین گذاشت و گفت این را به مادرت بده و بگو من در خدمت گذاری حاضرم فردا به دیدن شما میآیم تا یادی از برادر از دست رفته هم بخونی. پس از خداحافظی جادوگر علایدین شتابان به خانه آمد و به مادرش گفت عمویم از مسافرت برگشته و فردا به خانه ما میآید. مادر علایدین گفت تو نه عمو داری نداری. علایدین گفت مهم نیست. مهم این است که مرد محترم این پول را به من داده که به تو بدهم و به من هم اطمینان دادی که برادر پدر من است. مادر علایدین پاسخ داد که تو عمویی داشته که سالها پیش فوت کرده. شاید این مرد برادر دیگر پدرت باشد که من خبر ندارم. روز بعد علایدین مشغول بازی در کوچه بود که جادوگر آمد و او را در آغوش گرفت و بوسید و دو عدد سکیه طلا به او داد و گفت به مادرت بگو من امشب خانه شما میایم تا شام را با شما بخورم و صحبت کنیم آنگاه آدرس خانه را از علایدین پرسید و رفت مادر علایدین هم به بازار رفت و آزوقه و مواد خوراکی خرید و شام مفصلی تهیه دید و تمام روز خود صرف تدارک پذیرایی از میهمان ناخوانده بود و در انتظار ورود او نشست سر شب جادوگر وارد شد و علایدین عموی دروغین خود را به درون خانه راهنمایی کرد و در بالای اتاق او را جای دادند دادوگر مقداری میوه های مختلف و شراب برای بعد از غذا همراه آورده بود خود را به مادر علا معرفی کرد و اظهار تأثیف نمود که در آخرین لحظه نتوانسته برادرش را ببیند و سالها از او دور بوده ولی باز هم خوشنود است که همسر و فرزند او را میبیند و در خانه برادرش وارد شده است مدت چهر سال به مسافرت در ایران و هندوستان و سوریه و عربستان و مرس گذرانده و عاقبت به افریقا رفته و در آنجا سکونت گزیده و در طول این سالها از دیدن برادر و خیشاوندان و زادگاه خود محروم بوده است و خیلی مشتاق بوده برادر خود را در آغوش گیرد و به همینجا هر تصمیم به بازگشت به زادگاه خیش کرده اما متاسفانه سعادت زیارت برادر را از دست داده است ولی همواره مهر برادر را در دل خیش زنده نگه داشته است و خوشحال است برادرزادهی خود را در بین سایر بچه های کوچه بشناسد زیرا او را خیلی شبیه برادر خود یافته است. جادوگر آفریقایی آنچنان با احساس و دلنشین سخن گفت که مادر علایدین به گریه افتاد. آنگاه از علایدین در نام و شغل او پرسش هایی کرد. علایدین پاسخ داد اسم من علایدین است و بیکار هستم مادر علایدین به سخن در آمد و گفت این پسر همه اوقات زندگی را به بازی و کوچه گردی با بچه های همسال خود می و پدرش کوشش بسیار کرد تا او را خیاطی بیاموزد ولی همین که فوت کرد علایدین دوباره به تنبلی و ولگردی خود ادامه داد پدرش بعد از مرگ چیزی برای ما باقی نگذاشت و من با دو کریسی به دست می آورم. و می یکی از همین روزها علایدین را از خانه بیرون کنم تا خودش نان خود را به دست جادوگر به علایدین گفت باید به فکر و بخار باشی و من برای تو دکانی اجاره می کنم و کالا و پارچه های خوب برای تهیه می کنم تا آنها را بفروشی و با پولی که به دست می آوری اکناس خوبی دیگری به جای آن به مردم بفروشی و با این شغل آبرومند زندگی آسودهی برای خودت فراهم کنی. علالدین این پیشنهاد را پسندید و قرار شد روز بعد امویاش به سراغ او بیاید و او را با خود به بازار ببرد و رخت نو و آبرومندی برای او خریداری کند و ظاهرش را آراسته سازد و او را به صورت یکی از بازرگانان ثروتمند در آورد و بعد هم فکری برای تهیه دکان کنند مادر علالدین با این مهربانی هایی که جادوگر نسبت به علالدین و خود او نشان میداد رفته رفته باورش شد که جادوگر اموی واقعی علایدین است و آن شب تذیرای شایانی از او به عمل آورد و تا دیر وقت به گفتگوهای گوناگون پرداختند و شام خوبی با یکدیگر خوردند و اواخر شب هم جادوگر از آنها خداحافظی کرد و رفت روز بعد جادوگر علایدین را نزد یکی از بازرگانان لباس برد و بیشتر رخت‌های دوخته شده را برای او انتخاب کرد و آن را فورا خرید و کفش و پیراهن و سایر لوازم را برای او تهیه دید. علایدین که از سر تا پا شده بود، از امویی خود تشکر کرد و جادوگر هم به او گفت که او را فراموش نخواهد کرد و همان روز علایدین را به دکاهای تجار معروف برد و با آنها او را آشنا کرد و به ای که عالیترین کالاها و اجناس را میفروختند و بازرگانان عمده دکان داشتند و با آنان آشنا بودند، او را با آنها آشنا ساخت. بعد هم علایدین را به کاروانسراها که محل زیست کاروانیان و بازرگانان بود برد و سرانجام او را با همه آشنا ساخت. این برنامه تا فرارسیدن شب ادامه داشت و جادوگر علایدین را به خانه برد و او را به مادرش سپرد مادر وقتی علایدین را با آن لباس زیبا و گران قیمت و کفش های تازه دید از جادوگر تشکر فراوان کرد و گفت با این ترتیب میتوان امیدوار بود که علایدین در زندگی راه صحیحی را پیش خواهد گرفت جادوگر پاسخ داد علایدین جوان خوب و با هستی ای بازرگانان باید او را یاری کنید فردا که روز جمعه است، تمام بازار و کسر به تحتیلند. من فقط میآیم که علایدین را به تفریقه های عمومی که همه مردم میروند ببرم جادوگر خداحافظی کرد و رفت اما علایدین از فرط شادی خوابش نمیبرد. فردا صبح زود علایدین بیدار شد و لباس پوشید و آماده اموی خود شد و در آستانه در ایستاد تا اینکه جادوگر رسید علایدین به آغوش جادوگر پرید و هر دو یکدیگر را بغل کردند و جادوگر علایدین را نوازش کرد و گفت حرکت کنیم با اجازه مادر آنها راه افتادند دادوگر علایدین رازده از دروازه های شهر خارج کرد و در میان باقها به گردش پرداختند و از میان باقهای بزرگ باصفا که متعلق به قرصها و خانه های بزرگ اعیانی بود و دیوار و حساری نداشت عبور کردند و مدتها به راهه مایی ادامه دادند و سپس کنار چشمه آب شفاف و پاکیزهی نشستند جادوگر از میان دستمانی که همراه آورده بود مقداری خوراکی و شیرینی بیرون آورد و با علایدین آن را خوردند و از آب گوارای چشم نوشیدند و پس از برطرف کندن خستگی دوباره به راه خود ادامه دادند در اینجا باقهای بزرگ با یک شیار از هم جدا میشد که در واقع مرز هر کدام بود ولی رفت آمد به باغها آزاد بود زیرا همه به یکدیگر اعتماد داشتند اما وقتی که باقها هم تمام شد جادوگر علایدین را بدون اینکه متوجه شود همچنان به دنبال خود میکشید تا آنکه از چند تپه هم عبور کردند و به دامنه یک کوهی رسیدند. علایدین تا خونون چنین مسافتی از شهر دور نشده بود و پرسید او کجا خواهی رفت؟ جادوگر گفت نگران نشو من میخواهم باقی را به تو نشان دهم که مانند آن را تا کنون ندیده ای. زیاد راهی نمانده به زودی خواهیم رسید. جادوگر برای مشغول کردن علاءالدین برای شروع به قصه گفتن کرد سرانجام میان دو کوه به محل مورد نظر جادوگر رسیدند در اینجا جادوگر مقداری چوبهای خشک صحرایی را روی هم انباشت و کبریتی روشن کرد و روی چوبها انداخت و بعد هم از یوب خود مایعی بیرون آورد و روی آتش ریخت و دعای خواند که علاءالدین چیزی از آن نفهمید در همین لحظه صدای ترسناکی در کوه منعکس شد که زیر پای علایدی به لرزه درآمد. علایدی از شدت ترس خواست فرار کند، اما جادوگر ضربه محکمی به صورت او نواخت که علایدی روی زمین قلقید. آنگاه علایدی گفت: مگر من چه کردم که با این شدت مرا زدی؟ جادوگر گفت: من به جای پدر تو هستم و نباید به ترسی آنگاه زمین مقابل آنها از هم باز شد. و تخت سنگی که حلقه آهنی در وسط آن نصب شده بود ظاهر شد جادوگر گفت تو باید این سنگ را برداری و به درون زمین بروی در آنجا گنجی نهفته است که متعلق به توست و گنج های جهان است من نباید در این جایگاه زیرزمینی بروم و تو خود باید این کار را به تنهایی انجام دهی با این ترتیب آنقدر ثروت من کاهی شد که از مان دنیا بینیاز میشوی. و برای آنکه به نتیجه برسی هر کاری که میگویم باید بیچون و چرا انجام دهی علا که بسیار خوشنود بود و خود را به زودی مردان جهان تصور میکرد گفت امون جان هر چه بگویی گویی انجام میدهم جادوگر گفت باید اولین سنگ را به تنهایی بلند کنی و کنار بگذاری نام پدر و پدر پدربزرگی خود را یاد کن و آن را به سویی بگذار علا همین هم کار را کرد و حلقه آخنین را محکم گرفت و سنگ را براحتی به گذاشت و پلکانی ظاهر گشت سپس جادوگر گفت تو باید از اونجا پایین بروی به انتهای که رسیدی دالانی پدیدار می گردد. دالان را باید تیه کنی اما به دیوارها دست نزن اگر دست بزنی آنن حلاک می‌شوی. پس از انتهای دالان به واقع وارد می‌شوی. که پوشیده از درختانی میوه است در گوشه ای از این باغ ساختمان است وارد آن که شدی تاقچه‌ای می‌بینی که چراغی روشن روی تاقش نمایان می‌شود تو باید آن را برداری و فتیلش را درآوری و نفتی را که در آن جای دارد بر روی زمین بریزی آن چراغ کاملا خشک خواهد شد آن را زیر پیراهنت پنهان کن و با خود بیرون بیاور بعد از این سخنان جادوگر انگشتر خود جا را آورد و آن را در انگشت علاءالدین کرد و به او گفت این حلقه را نگه دار که این حافظه تو خواهد بود علاءالدین از پلکان سرازی شد و پایین آمد در انتهای پله‌ها رو دید در همان راهرویی که جادوگر گفته بود وارد شد در انتهای آن به باقی پر از درخت میوه رسید و از آنجا به گوشه باغ که ساختمانی در آنجا بود رفت و وارد شد چراغی را که جادوگر گفته بود بالای تاغچه روشن دید و به همان ترتیبی که جادوگر گفته بود رفتار کرد و چراغ را بدون فتیله موضع کرد و آن را زیر پیراهن قرار داد و در حین بازگشت میوه‌های رنگارنگ درختان که همه آنها از یاقوت و زمرد و الماس و, و مروارید بود نظر او را به سوی خود کشاند و علایدین جیبهایش و دکیسه‌ای را که به همراه آورده بود از آن پر کرد و همراه خداورد و از پلکان بالا رفت تا به دهانی چاه رسید جادوگر که با بیستبری در انتظار او بود گفت چراغ را به من بده علا گفت بگذار از اینجا خارج شوم. جادوگر از گفته علا خشمگین شد و چند قچه از مایهی که با خود همراه داشت روی زمین چکانید فورا صدای ترسناکی که برخواست و تخت سنگ دوباره روی چاه قرار گرفت و شکاف زمین به هم آمد علایدین با این عمل جادوگر فهمید که او امویش نیست بلکه یک افریقایی واقعی است زیرا معروف بود که بزرگترین جادوگران جهان از افریقا میآیند. این جادوگر همچه هل سال تمام در افریقا دست جادوگری خوانده بود و با یک کتب جادو پی برده بود که چراغ جادو در چنین محلی در کشور چین وجود دارد که هرکس کس بتواند آن را به دست آورد دی و منترین افراد عالم می شود و قدرت او از بزرگترین پادشاهان هم بیشتر خواهد شد این جادوگر دانا رنج سفر دراز از افریقا به کشور چین را بر خود هموار کرده بود و چون ممنوع بود که شخصا به درون چاه برود و چراغ را به دست آورد ناتار بود به کمک شخص دیگری به این کار اقدام کند و او هم بعد از مطالعه در قیافه علایدین او را مناسب این کار یافت جادوگر انتظار داشت که علاءالدین فوراً چراغ را به او بدهد اما وقتی علاءالدین او را معطل نگه داشت جادوگر به قدری ناراحت شد که با عدای دو کلمه جادو چاه را دوباره مسدود ساخت و با این ترتیب تصمیم گرفت علاءالدین را از میان بردارد چون دیگر امیدی به یافتن چراغ جادو نداشت فوراً به کشور افریقا بازگشت علاءالدین که خود را در روی پله های چاه زمین زندانی دید بسیار تأسفید و داد دادو فریاد کرد کسی به دادش برسید در تاریکی از پله‌ها پایین آمد تا به داخل باغ برود و در روشنایی باغ فکر چاره کند اما متأسفانه براسر جادو جادوگر باغ هم تاریک شده بود علاءالدین بعد از دو روز گرسنگی و تشنگی ناگهان به یاد حلقه انگشتری افتاد که جادوگر برای محافظت به او داده بود بی اختیار را مالش داد ناگهان جن هیکلداری پدیدار شد و گفت من بنده شما هستم هر امری بفرمایید انجام خواهم داد اگر علایدین در وضع عادی بود از جن به این تنومندی وحشت می کرد اما در شرایطی بود که بدون ترس فوراً گفت مرا از زیر زمین بیرون ببر بلافاصله علایدین خود را در بیابان و در همان نقطه‌ای دید که با جادوگری استفاده بود او خدا را شرکر که از دخلی زیرزمینی بیرون آمده و راه خود را در پیش گرفت و از میان باغ ها عبور کرد و رخ پار شهر کردید و سرانجام از دروازه گذشت و به خانه رسید. مادرش که میپنداش پسرش را برای همیشه از دست داده بسیار خوشحال شد و او را در آغوش کشید. علایدین خوردنی خواست و مادرش فارم غذایی برای او آورد و علایدین با عجل ها را بلید. و خود را از جنج گرسنگی رهایی بخشید وقتی که علایدین پیدا کرد و به حال عادی بازگشت مادرش گفت تو چرا به هفت مرد قریبهی گوش کردی و با او همراه شدی و باقای خارج شهر رفتی علایدین گفت اشتباه کردم این مرد قصد جان مرا داشت و همه محبت هایی که نشان داده بود برای فرید دادن من و کشتن من بود من و تو هر دو باور کرده بودیم که او عموی ماست اما تمام این مقدمات و صحنه ها برای این بود تا مرا به بیابان ببرد و نابود کند. اما دلیل دشمنیش را نمیدانم نمیدانم که چه بوده؟ باز هم هرچه فکر میکنم نمیدانم. آنگاه ائیدین آنچه را که آمده یاد بتر او آورده بود برای مادرش شهر داد و گفت: « همین قد میدانم او آدم حق بازی بود. علاءالدین علاوه بر شرح سرگذشت خود از روز جمعه تا آن لحظه انگشتر و چراغ و دانه های جواهراتی را که از آن باغ با خود همراه آورده بود به مادرش نشان داد و با وجودی که چراغ خاموش بود اما از تابش آن جواهرات اتاق کاملا روشن شده بود علایدین جواهرات را در زیر توشکی خود پنهان کرد و شرح حال خود را تا آخرین لحظه بازگشت شهر داد مادر علایدین از شنیدن گفته فرزند بسیار ناراحت شد. مناسزای فراوان به مرد ناشناس که خود را اموی علایدین معرفی کرده بود نثار کرد و او را مردی فریبکار و شیاد نامید. علایدین که حدود سه شب بیخوابی کشیده بود به خواب عمیقی فرو رفت. صبح که از خواب بخواست از مادرش صبحانه خواست. مادر پاسخ داد آنچه نان و خوردنی داشتیم همه را شب تو خوردی و چیزی نداریم. من مقداری پشم را ام. اکنون آن را میفروشم و با پول آن مقداری نان تهیه میکنم و به خانه میآورم علاهدین گفت مادر من چراغی را که با خود ام میبرم و میفروشم و پول آن را برای صبحانه و شام خرج میکنیم آنگاه مادر چراغ را برداشت و خواست برای فروش به بازار حمل کند؟ ولی چون خیلی گرد وخاک روی آن را گرفته بود با خود گفت که اگر آن را پاک کنم شفافتر می شود و بیشتر آن را خواهند خرید سپس با پارچه و ماسه شروع به پاک کردن کرد و همین که پارچه را رو روی آن مالید ناگهان جن قول پیکری نمایان شد و تضیح می کرد و گفت هرچه بخواهید بفرمایید تا برایتان بیاورم مادر علایدین از ترس قش کرد و افتاد ولی علایدین را از دست او گرفت و گفت من گرستنم و برای من خوردنی بیاور جل فورا ناپدید شد و بعد از لحظه ای با یک سینی بزرگ نقره آمد و دوازده بشخاب از بهترین گوشتها به اضافه دو بچی شراب ناب در برابر او گذاشت و ناپدید شد علایدین قطع آب روی صورت مادر پشید و او را به هوش آورد و سر صفه نشانید و گفت مادر از این غذای خوشمزه بخورید که سرد می شود. مدر علایدین که بوی خوش غذای لذیذ اشتهای او را برانگیخته بود شروع به خوردن کرد و از آن و تعریف ها کرد و به اتفاق علایدین تا آنجا که می توانستند از آن غذای خوشمزه خوردند و شراب هم نوشیدند و مقدار بسیاری از آن غذا هم باقی ماند که برای یکی دو روز دیگرشان کافی بود مادر علایدین پسید آیا این غذای شاهانه را سلطان برای ما فرستاده علا پاسخ داد نه آنگاه داستان جن و چراغ را تعریف کرد و گفت شما در حال بیهوشی بودید که جن این همه قضا را برای ما آورد ولی این جن از حیث لباس و شکل با آن جنی که من از زمین دیدم متفاوت بود معلوم می شود که اولی مربوط به حلقه انگشتری است که آن مرد شیعه به من داده و جن دومی مربوط به این چراغ است مادر علا وقتی فهمید سبب پدیدار شدن جنها همان حلقه انگشتر و چراغ جادوست به علایدین گفت این حلقه انگشتر و چراغ را باید فروخت تا از دیدن ترسنا که جنها آسوده شویم زیرا همانگونه که پیامبر ما هم گفته است جنها همان شیاطین هستند و باید از آنها دوری جست علایدین پاسخ داد مادر این چراغ با چراغهای معمولی تفاوت بسیار دارد آن مرد جادوگر که خود را عموی من معرفی میکرد، از غار افریقا به کشور چین آمده بود تا آن را به دست آورد و می گفت که هر کس آن را در اختیار داشته باشد قدرت و امکانات او از هر پادشاهی هم بیشتر خواهد بود و هر چرا که بخواهید در اختیار شما میگذارد. یعنی وقتی چراغ را مالش دهید جن نمایان می شود و خواسته دارنده چراغ را انجام میدهد. اما من این چراغ را به خاطر شما در گوشه‌ای پنهان میکنم. در مورد این انگشتر هم باید بگویم اگر من آن را با خود همراه نداشته باشم اینک در اینجا نبودم یعنی حتما در زیر زمین روی آن پله ها مرده بودم و این انگشتر مرا نجات داد و توانستم زنده بمانم از این پس این انگشتر را در انگشت خود جای میدهم و همیشه با خود خواهم داشت زیرا از پیشامدهای زندگی خبر نداریم و ممکن است در آینده خطرهایی پیش آید و مایران خاطر میتواند بارا محفوظ نگه دارد اما چرا او در محلی پنهان میکنم و نمیخواهم از آن زیاد استفاده کنم که همسایه‌ها از وجود آن آگاهی پیدا کنند مادر علایدین گفت پسرم تو خودت هر طور صلاح میدانی رفتار کن اما من نمیخواهم با این جن ها روبرو شوم شب بعد که جن برای خوراکی آنها آورده بود علایالدین و مادرش خوردند و چون دیگر پولی در بازار داشتند علا ایدین یکی از بشقاب های نقره را برای فروش به بازار برد تا با پولی که به دست می‌آورد، آنچه را احتیاج دارند فراهم آورد اتفاقا علا ایدین با بازرگانان یهودی رو شد یکی از این بازرگانان بعد از دیدن بشقاب نقره علا ایدین برد که از نوع مرقوب آن است ورزش بسیار دارد ولی فقط یک سکه طلا به او داد در حالی که قیمت آن شست سکه تلا بود تاجر باز وقتی فهمید علایدین اطلاعی از نقره و جواهر ندارد علاقه من و کنجقاب شد که اگر باز هم از این بشقاب ها دارد او حاضر است آنها را خریداری کند علایدین هم روی بی اطلاعی یازده بشقابی دیگر را به همان تاجر فروخت و یازده سکه تلا در برابر آن دریافت کرد با این پول مدتی هزینه زندگی را تمین کرد زمن او در افته آمد به بازار با تندین بازرگان آشنا شد اما مانند گذشته